بعد از من کسا میمی که در ظاهر ودکا می نوشند در باطن مجاهدین راه حق هستند امام خمینی صحیفه زور صفحه 18322 راسم عبادی سیاسی تقدیر از شخصیت بزرگ و بلند مرتبه مجاهد راه حق و ادالت و یگانه مبارز رشید است حاضر برادر رزمنده ولادیمیر پوتین در پوتینیه تهران برگزار خواهد شد با همه مندان به این شخصیت بزرگ در این مکان جمع خواهیم شد و با سر دادن شعارهایی چون ولادیمیر میقره خودش شییه پارچه پوتین ضد داعش با اختلاف خواهش روسیه روسیه خدا به همراه تو با این رهبر بزرگ و حقجو بیعتی دوباره خواهیم کرد از کلیه شرکت کنندگان در این مراسم با نوشیدنی های غیر الکلی پذیرایی خواهد شد دفتر تقدیر از مجاهدین راه حق کل نظام مستقر در پوتینیه تهران